اظبالله و نشانی صلوات راجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهین سعادت زج صلواتی داشته باشیم و اهداش کنیم به مسائل مطهره محمد و آل محمد صلی الله سلام و یک و عرض یمینن و شمالن درسته؟ من غیر افتاله یعنی بدون که باطل کنه کنه آره دیگه وقتی فعل چسید رو توش نیست دیگه افتالی نیست که دیگه خاطر همین داره میگه من غیر ابطالن یعنی بدون چه باطل کند البته از علمی است چسیرم وقتی فعل چسیر رو است باشه دیگه ابطال میاد. موقع ابطال نمیاد که فعل چسیر نباشد. بله خب. چی؟ و کد؟ یا جبو؟ خیلی از اینها واجب میکنه وقت یجب چسیرن من نازه اسباب، مثلا حبس نفس محترمه زرر و نفس محترمه حفظ مال چسیر اینها؟ آره دیگه همین هایی که بود آره همین هایی که بود بعضی واجب میکرد که گفتیم شریط آره. خاص یوبا حل بازه ها رو بعدش میگه که حبس مال یسیر لزیلا یزر رو فوتو بود و قتل حیهی که ازش نمیترسیم مکش دوباره یسیر مالی که مهم نیست یستحب باش آن و جمعه تن و به این ترتیب برای یکره ها مثال زد یباه ها مثال زد مستحب مثال زد واجبش هم گفت تو اون قبلی هاست هم که دیگه نداره دیگه چون جواز بالمعنه همه همش رو گفت خیلی خوب این مورد چارون و تو اهراز مالن یا یخاف و زیاه اذن. اهراز مالن خب. اینجا چی میگه؟ ای از مالی که مخفی یا من مخفی مالی که مالن یخاف و ضیاع. هم بسید که مالی رو تو تو کجا دیدی؟؟ ببین احراز دیروز گفتم یعنی یه مالی رو در حرز قرار بدی. چجوری توی جای سربسته در بسته ای می میذارن. یا مخفی کردن معنیش نیست. اما خب بالاخره مخفی میشه دیگه لازمش بعضی وقتا یه مالی الان بیرونه زیر دست و پاس. شما نماز رو بخونیم شده از بین بله وردارم ببرم بدم. نماز وقت می‌کنه، احراز می‌کنون رو دیگه. حالا سوالش کجاشه؟ دیگه اینکه مخفی شده یا نه؟ ما میایم بعد مخفی کنیم اون. شده بخواد چکارش کنین؟ نماز تو وقت کنید چیکار کنین؟ احراز با به افاله. یعنی تازه میخوام این رو بکنم. احراز کنم مالی رو که می‌ترسم احراز مثلا ارث کردم مثلا زدم دیگه. گوشید سر راهه. حالا تو نماز می‌خونید. تا رو بخونید تموم کنین ممکنه اونو ببرن. میداری می‌ذارید تو جیب هرزه. این مثال برای این. خیلی خوب دیگه نبود نبود دیگه محمدی سوالی چیزی طب. و یوچ رح الالتفاعت و یمینن و شمالن بالبسر اول وجه ففل خبرن نه لا صلاة لی ملتفتن از اینجا مکروهات نماز رو شروع می‌کنیم. مکروهات نماز چه رفتی به تروچ داره؟ خب همین چه رفتی به تروچ داره؟ خب این به بنامین تروچ دیگه ترش های غیر ازامی چطوره؟ چی گفت؟ دیگه گفت از التفات به بعد اینها لازم ترچ نیستن آره اینا مکروه هم یعنی ترچشون خوبه لذا به این ترتیب میشه ارتباط اینها رو گفت خب و یک رحل التفا خدا رحمت کنه شهید در وقت تیتروینا ز... نزده مثلا الان جا داشت بگه مثلا فیلم مکروهات بعد شروع کنه و بشموله مکروهات ترک چیه ترک هایی که ترجحه ارزامی نیست همین دیگه ترجحه الزامی آره خب قطعاً غیر از اینا ما داریم ترجحه ای که هست و مکروحه ولی خب دیگه بلکه یعنی انجامش مکروحه خود ترجحه مکروه نمیشه اصلا مکروهات آره دیگه اینجا مکروهات نماز یعنی اساس این که ترک کنیم اینا رو حالا ببینید و یکره الالتفات و یمینا و شمالا اگر در بین نماز شما به سمت راست یا چپ یه ذره متوجه بشید. نه این که برگردید از قبله ها. آنها ممکنه بعضیشون ممنوع باشستن. مبتل باشید. این جایی رو میگیم که یه ذره صورتتون رو به سمت راست و چپ برگردونید یا چشمتون رو به سمت راست و چپ برگردونید. این مکشروهه. میتونیم بگین چرا؟ روایت که ایچی دیگه. اون دیگه نسخه شاهباز شدید. اما صورت نماز هم ممکنه به هم بخوره این هم هست یعنی در معرضه ببین اینجوری بگو در معرض خراب کردن اون شکل نماز هستید اینم خوبه ها حضور قلب این سه که خوبه پس ببینید روایت گفته مکش دو صورت نماز به هم میخوره در معرضه به هم خوردن میشه و سه حضور قلبت رو باعث منافع داره دیگه. نماز میخونی که با خدای ارتباطی کنی. ناز قهرس میشه اگر اینها رو ما بلا اشکال بدونیم. این شکلی مقدمه حرام مقدمه حرام از وقتی ممکن حرام باشه. مثل کسی که انگور میکاره تا باهاش مشروب درست کنن اینا رو بعضا لعنت هم کردن حتی. آره. یعنی حرمتش بعضی وقتا شدید هم هست. خدا لعنت کنم که میره تا یه مؤمنی رو نزد حاکم مثلا نمامی کنه تا او رو بکشنش مثلا اینا هست لذا اون اش رو باید بررسی کنیم ببینیم میشه گفت مقدمه حرام مکروه هست یا حرام است یا شاید یه نفر بگه نه این مقدمه خود حرام نیست که اصلا مباح اینو باید بحث کرد مثلا هست کدوم اذا من کاشت ناخن اون کسی که ناخن می‌کاره، واقعا نمی‌تونه تشخیص درست بده. حالا دیگه کاشت ناخن یا کسی که مثلا ابزاری رو درست میکنه چه باش موسیقی حرام انجام خواهند، داد ماهواره، چیزای دیگه. حالا دیگه ما حث. خب بل بسر اول الوجه. حالا دقت کنید اینجا رو. ففل خبره انه لا صلاه یا انه لا تفتن چه کسی که این مرون ور, ور التفات کنه التفات میدونه توجه حروف اصلی التفات چیه حروف اصلیش لفت لفت لا تَفَنَ همون لفت ليفت ليفت آقای چرمی. چرمی لفت آره چریمی چریمی لفت ندیگه وقت ما بتا جزئیات میش آره دیروز نبودید لفت داده بودی <تصفيق> لا سلا ملتفتن توی منطقه های مزفر داشتیم لفت و نظرن یعنی توجه نظرتون رو اینجا داشته باشیم. خب حضرت فرمود ملتفت نمازی ندارد لا سلا ملتفتن جنس نماز هم نداره خب سوال اگر شما باشید و این حدیث رو در ایتا برای شما پیام کنید. بگن لا صلاة این یعنی نمازت مکروح هست توش یا اصلا باطله لا صلاة لکه باطله آقای شهیدسان این چه داله بر بطلانه اگر اتفاعت باشه باطل میشه شهیدسانه میگه خب ما اینو میدونیم این اگر ما بودیم همین روایت بله اما روایات دیگری هم داریم چه گفته ملتفت عب نداره کجا گفته ابنه چه که گفتن اگر صورتونو رو خیلی و نیارید مثلا 90 درجه نشه یا بیشتر نشه ابنه نداره؟ حالا اون رو این بذاریم در نتیجه لا صلات الملتفتن رو باید چی معنی کنیم؟ مخصوصا که ما این اسلوب رو زیاد داریم مثلا لا صلات جار المسجد لا صلاح تله نمیدونم چی چی لا صلاح اینا رو داریم اون اسلوب هم به کمچ ما میاد حالا اینشون من گفتم و اینو من اضافه کردم نشون میده که منظور نفی صحت سلاح نیست کلن نمازش باطله هیچیه نه اون نیست چمالش نیست کامل نیست حالا ببینید میهه و وحوملن این وهم ادامه استدلال به روایت ففل خبره از نحو لا صلات للملتفتن وهم له زود باید اینو بچسبونید به او الان نفیل کمال کمالش نف شده روش میتونید اینو یادداشت کنید مثل لاصلات صلاه لجاره المسجد و اینا چرا هم الان نفیل کمال یعنی نماز کامل نیست برای ملتفت نمازش کامل نیست یعنی روز قیامت نگاه میکنه میبینه اون نمازش نماز نماز هست ولی خیلی به درد بخور نیست چیز کاملی نیست از مثلا نمره بیست مثلا شاید نمره ده گرفته قبوله ولی ده دیگه دوازده جمعن جمعن مفعولون لحه یعنی چرا همه برای چه حملش کردید بیکار بودید میگه نه جمع کردیم دیگه روی جمعن هر موقع جمع اومد اگر بعدش نگفته بود بین چی و چی شما خودتون بنویسید بنویسید بین ال اخبار علتی تدلالا صحت این رو... نماز و بین این روایه پس بنویسید بینه هو یعنی بین این خبر و بین روایاتی که دلالت بر سهت میکنه جمع کردیم که توضیح دادم و فی خبر آخره انها حالا یه خبر دیگهم داریم از او از کی؟ نه. پیامبر رو کجا گفته بود که الان زمیر رو برد نه. نه می دونم پیانبر رو کجا گفته بود نگفته بود شهیده سانی انگار اینجا صحف کرده باید اون بالا می گفتی از پیغمبر بزرگوارمون اینجا هم دوباره خبر آخر انحو صلی اللہ عليه و علیه واله. اما یا خافل لذی یوحنبل و وجه او فصلات؟ آن الله و وجه او شما چه تو نماز این ور, ور میشی؟ چشم میتی از صلاته تو این ور ور میکنی؟ آیا نمی اما یا خافو؟ نمی ترسد کسی که یوحنبل و وجه او فصلات؟ اینکه چی بشرت؟ چی بترسه؟ آن یوحنبل الله و وجه او وجه ما یه دفعه این رو نگاه کنه ببینه ببین شده. مثل اون چه دید خرج شده یادتونه اینا ببینین چجوری اول خوشحال شد از شد بعد چند -چند. شد. چرا خیلی من نماز میخونه این نگاه میکنه خب اشی اونا فکرشون اینو ات... این چش شد اینو چه گفتی اینو چه گفتی منتظر باش یه چیزی خواهم گفت الان که با این حرفتون مرتبط خواهد شد خیلی خوب آه یه نکته ها نگید رو بگو آیا قافله باشه روایت الان روایت لاصالات ملتفطونو رو هیچ چیزی نمکنه. از چرا دیگه یو هبلو بچا این بر اون ور کرد. ها این وفی خبرن آخر جمع بین این و اون لاصالات ملتفط رو نمیخواد بگه. میخواد بگه یه حدیث دیگه هم داریم اتفاقا. چه این حدیث شما بگید. دال بر خیلی خوب خب طالبه چراحت دیگه فساد بر چراحت من دیگه همون چراحت فساد و حرمت نه آقا ببین حرمت وضعی و تکلیفی نداریم حرمت وضعی یعنی چه باطله حرمت و تکلیفی یعنی چی حرامه هیچ کدوم نیست چراحته حالا دوباره روایت رو ببینید درسته کسی که سرش اونبر اونبر میکنه نمیترسه در نماز خدا سرش رو به سر خر برگردونه این بعد برد یا حرمته؟ چراه. اگر شما تو ایتا این پیام همینجوری اومد قبل و نداشته نداشت هیچ چیز دیگری نداشت حرمت می یا کراحت؟ چرا؟ خدا میگه ممتنید. حالا خواستی همه نداره اول میتونید یه کاری کلی سرت مثل سر خر بشه ای را دیدن اینجوری سر خ... آدم عوض شه بشه خر این حرمت میاره یا کراحت؟ <تصفح> قبل و بعدشو کار نداشته باشه تشبه, باید. باید. تشبه نیست اصلا واقعا سرش خر بشه مگه پینوژیو تشبه شد اون واقعا خر شد دیگه <تصح> بار می برد اصلا قاری بهش بسیار چه راحت رو, رو می لسونم ش... شهد سانی خب که هنوز به شکل انسان هستی گوشت برادر تو میخوری وقتی غیبت می این داره میشه خرس خب شهید سانی یه توضیحی میده دقت کنید ببینید این سوالی که پرسیدم به این توضیح شهید سانی میتونید ارتباط بدید یا نه شهید سانی میگه ول مراد و تحویل و وجه قلبگی چه وجه قلب الحمار منظور صورت واقعیش نیست که انسان آینه رو نگاه کنه اه این دیگه کیه؟ بعد بگن خودتی دیگه خر شد منظور این نیست قلبش رو نگاه خواهد کرد خواهد دید که قلبش شده قلب خر قلب خر به چی تمایل داره خر به یونجه و علوفه و به کاهوینات توجه داره به چیزای آسمانی که توجه نداره که قلب اولار که به تقویب و اطاعت خالق و محبت خدا و اینها که توجه نداره چه به هیچ تو اینها <تصفيق> خره خود کافر از جلوش بستشه دیگه چیز نمیخوام <تصفيق> شهید سانه میگه منظور روایت اینه که صورت قلبت برمیگرده مثل صورت قلب خرمیشه دیگه شما وقتی نمازت اون شکلی میخونی هم بت میشه که چی بخرم چی بپوشم چی بخورم اونجوری میشی مثل یه خرم میشه بذارت بعدش رو بخونم بعد نظرتون رو بگیم حالا بذار پس بخونم میگه که ول مرادو و تحویل و برگرداندن وجه قلب این شخص چه وجه قلب الهمار فی ادم اطلاعهی یا اطلاعی علال امور الویه به امور الویه اطلاع دیگه پیدا نمیکنه شما هیچ وقت اصول اخلاقی مثلا والا رو دیگه به اولا نه چون فایده نداره چون خر دیگه اگه میفهمید که اسمش رو خر نمیذاشتن و عدم اکرام به بل الیه خر با جمالات الیه سطح بالا اکرام نمیشه خر دیگه مثلا خر مثال زده میشه برای همین هستی و آدم آره. حدیر لذا پیغمبرم اینو فرموده شهید سانی منظور روایت رو میگه اینه خواه خب. حالا اون سوالی که پرسیدم که این روایت درلت بر کراحت داره حرمت اون رو با این توضیحات شهد سانی. ببینید ارتباط داره یا نه من نظر دیگری دارید سرید بگید چی؟ می بگو اول کریم شاید دروایت منظور شما برگرمونیستن مثلا مشترکنا قداره جون تویی اصلا صورت نماز با من بود. خب اونو دیگه نمازش التفات نیست. در حال تماشای نماز نمی‌خونی. تا اون دیگه. خب اونچه ببین اگر منظور باطل کردن نماز بود خب خیلی وقتا ما نماز رو باطل می‌کنیم طرف وسط نماز حرف می‌زنه. وسط نماز به کاری مُحدث ازش عمدن سر می‌زنه باطل میشه. یعنی درست. افتال نماز که این عقوبت رو نداره اتفاقا به ذهن میاد که این نمازش باطل نیست یه چیز مجازیه ولی از این چیز مجاز داره سو استفاده میکنه عقوبت میاد سرش میگه اینجوری به ذهن میاد شما چی دلیل حسین توضیح مناسب نیست ما آیه روایت میگید هر دیوانیه بر اندازه اینجا میگه حیوانات بالاخره تو اون آیه هم هست که چه چل انان یعنی اون افراد بد رو میگه بعد میگه اینا مثل حیوانات پس معلومه چه حیوانات بدن بعد میگه نه اصلا اینا از حیوانات هم پایین ترن پس حیوانات پایینن به اندازه‌ای خودشون این میگه خب همون درچه خودشون کمه دیگه یعنی شما آدمی به اندازه یه خر دیگه فهمت میاد پایین اینم چیز نداره باشه نداره دارسانی میگه سندش رو نگاه کنیم اینم حرفیه ترى ببینید من اینو عرض می‌کنم خاصیت یاد داشتون بعضی اینجوری توضیح دادن گفتن شهید سانی چون این روایت را دال بر حرمت میداند این توضیح رو گفته و الا اگر به ظاهر روایت عرض کنیم بگیم که اگر یو حو ولوجهه او این و تبدیل میشه به خر اون وقت روایت دال بر حرمت میشه شاید سانی به خاطر همین توضیح کرده گفته نه منظور قلبش برگرده. منتها اینم اینم اشکال داره این چه بدتر شد که اگر در ظاهر و قیافه انسانیش خر شد حرام بود قلبش قلب خر بشه که بدتر حرام این دیگه جهنم میده این دیگه اصلا از بهشت دستش کوتاه میشه. اون حالا یه مدت تو دنیا میخواست آدم باشه حالا خر شد. موجود بعدا توبه کنه عوضش ولی اگر قلبت برگرده قلب خر بشه که بدتر حال رو میرسونه پس این حرفا نیست شاید شهیدستانی همینجوری فهم خودش رو گفته دیگه گفته به نظر من معنی این رواب اینه چون معنی نداره چه انسان. چه شاید شهیدستانی از این جهت گفته الان دیگه دوره مزخو این حرفا نیست که یه دفعه ببینید تو مزچه نماز جماعت خونده شد بعد از نماز جماعت دو سه تا خر تحویل جامعه دادیم از این, این پیش نمیاد که لذا شاید انسانی میگه چون این ممکن نیست پس نه که این حرام نیست نه ممکن نیست لذا معنی روایت رو به این صورت توضیح داده. بله ممکنه خیلی ها. تو نماز جماعت شرکت کنن بعدش قلب خر تحویل جامعه بدیم ولی پیدا نیست کسی نمیبینه این رو. اما از جهت خود حدیث باشتنی با منی یا تو گوشی گوشی رو باید یک کاریش بکنیم ما باشتنی اون رو وسل میکنه میگه منو نگاه کنم نگاه کنم تو هم نگاه میکنم باشتنی این حدیث اصلا مال اهل سهنده این حدیث رو شیعه نداره تا قرن نهم تا قرن دهم ده و نهم اصلا تو منابع شیعه اثری از این حدیث نیست یادتون باشه تا قرن نهم و دهم شخصی به اسم ابن عبی جمهور یه کتابی نوشته به اسم عوال لعالی یا غوال لعالی احتمالا شنیدید اسمشون تو کتاب‌های درسی هست غین یا عیند عوالی یا غوالی این آقا خیلی از احادیث اهل سنت رو که بدم نیستن احادیث بدی نیستن اینا رو اوورده در یه کتابی نوشته از اونجا تزریق شده به منابع شی. البته منابع بعدی شیه ها به قبلی که اینو نمیاند و تو کافی دیگه نیست تو کتابه اصلی نیست شهید ثانی هم بعد از این آقای بروی جمهوره من حدس ترجمه امروز صبح یه مشکوک شدم گفتم بزنید حدیث اصلا کجا سوینا نگاه کردم نه آره نه اصلا مال شیه نیست مال اهل سنته شهید ثانی هم گویا در همین اوال لالی دیده این رو و اما منابع سنت رو جستجو کردن آره این فراغان صحیه مسلم کتابات دیگرشون این هست وجه همارو این اینها حالا شما گفتید اینو به عربا بگیم تو منابع خودشون اتفاق این هست تو منابع شیعه نیست حالا همین که در منابع شیعه این نبوده یعنی ببینید کلینی 16 ذات حدیث نوشته اینو نداره من لایحزار خب اون بهار که از همین احوالی آورده دیگه بهار داره بهار منبع بعدیه بهار اگار همه رو جلوش عوالی رو گفته چطور خوبیه اونم ازش اوورده این تحلیل نمیشه باید دقیق منابع رو باید بشناسید حتی وصال شیعه هم اگر بیاره باز از همین عوالی اوبرده دیگه حالا جالبه بهار از شهید سامی اوبرده شهید سانی که از عوالی اوبرده بعضی نمیدونی توجه نداره من حس میکنم شهید سانی توجه نداشته که این حدیث مال شیعه نیست وقتی هیچ کدوم از علمای شیعه این حدیث رو نر نکردن با این که به احتمال زیاد این رو دیدن این به شدت حدیث رو تزویر می‌کنه. لهز اینقدر کار نمیخواست روش وقت بذاریم. خدایا هر چه هر حدیثی هست از اهل سنت به ما رسید. این مقدار می‌گفت بس بود. حالا این چه بگیم بس؟ این چه بگیم نه این حدیث به حرمت حرمتش حدیثانی ترسیده حرمت چی رو حرمت؟ مثلا سند نداره این مال شیعه نیست مال اهل سنت و این حافظ خیلی این حدیث. باز حدیث حدیث سنت باشه که ما هم نه کردیم اون خوبه ولی اینها نه لذا این من دوباره برای من عیان شد که علوم حدیث علوم حدیث استاد شاگردی میخواد مباحثه میخواد کار میخواد اینا رو باید داشته باشید این به نظر من این اشتباه برای خود تو فقه بعدی هم از شهید گرفتم چسی هم نرفتیم کجاست او اینا اینها رو از این چیزا ما کم نداریم پس اگر من بودم اصلا این حدیث رو اصلا اصلا مدرش نمی کردن علی چون... <تصفح> بخوای احادیث حدیث سمنت رو که اووردن و ما نداریم کار کنیم چه خیلی وحه می خواهدون که یه دوگی بحثی زدائی می دیگه خیلی خب تمام بریم سراغ بعدی مچروح بعدی و تصاوب تصاوب بالحمز بخونید یقالو تصاوب تو ولا یقالو تصاوب تو جوهری, جوهری اسم یکی از لغوی هاست؟ اسم چطابش چی بود؟ سه ها. سه ها توضیح دیگه نمیده؟ فاید تساو تصاوبتو نخورید این اجوخ واوی نیست محموزه محموز عین خب حالا تصاوب چی چی هست الان؟ خمیازه کشنه سر نماز خمیازه بکشید حالا اینجا بعضیا توضیح میدن میگن آقا خمیازه کشیدنی این مکروه است که چی باشه اختیاری باشه چون این اختیاری نیست که دست من نیست که متو من یه ساعتشا یه خمیازه اختیاری بکشید نمیشه چشید آقا خمیازه اختیاری. اولا نمیشه اگرم بشه من دیوونه‌ام همین سر نماز بگم حالا اهتن الصلاۃ المستقیم و حالا خدایا خدا یخودت صد کن بذار عمدی تسعوب داشته خب این نمیشه من جمانم اینه این توزی که دادن فکر کنم اینجوری باشه <تصیح> ساله خیلی نگم منم خمیازم میگیره کلاس خراب من جمانم اینه چه نمازتون رو نندازید یه موقع بی حالی و چه سالت چه هی با خمیازه بخون این مکروحه ببین اینه. این اینجوری فکر میکنم برداشت والله خمیازه حالا ببینید عواشونا بعضیاشون گفتن منظور خمیازه اختیاری است و این خطا من احساس میکنم با همین دیگه من همرو میگم هم. یعنی یه موقعی بخونی چه سر باشی اول وقت باشه نا. مثلا شب دیر میخوابه نماز صبحش رو دیگه, دیگه تا این حد برای خدا احترام قائل چه آخر وقت پا میشم میکنم توم اونم سریع میخونه چه زود دوباره بگیره بخوابم میگه پتو رو رختخواب دست از ادا نماز هم دوباره میخوام حتی دستورین هم نمیره میگه خوابم میپره بعد تا خون السلام علیکم و رحمت الله شیرزه میزن اونجا خب این نماز معلومه دیگه با خمیازه است و چه سالت و این بعدی و تمتی تو قرآن داریم تمتی رو سمزه هبه اله اهلهی یا این تکبر و این ها هست با حالت تکبر راه رفتن رو میگه در اونجا و هوا اینجا در نماز یعنی چی؟ تو نماز که تکبر است یا چون حواضا اینکه جوری که با تکبر چه نمخاله مد الیدین پس معلوم میشه اون های تکبری هم یه مد الیدنی داره دستش رو اینجوری مثلا میچشه اینجوری در حالت راحتن شاید شاید حالا من دقیقا نمیدانم بده تحقیق به هر حال تو نماز مد الیدین من نوشتم مد الیدین ناشی از سالت یعنی تو کلاس و اینها بعضی وقتا میبینی خسته است دستش رو اینجوری میچشه اینا این سر نماز این هم مکشوره خب نماز مثل آدم بخون چرا ات ات ات ات ات ات برد. بله دوغتش به تکبر رب داره اینجا نه همون چشیدن دسته اونجا تکبرم شاید یه چشیدن دستی تو اون راه رفتن بوده که اون رو گفتن از اینجا به اونجا بردن از اونجا به اینجا نبردن که خب اشکال نداره نماز دست مثلا دست گیر کرده به لباست می کشی اونو نمیگه که مدل یدنه ناشی از کسالت همیازه می کشه دستاشو اینجوری مثلا بعضا آدم دو دستشو اینجوری هم... نه دیگه صورت نماز این فعل کسیر نیست اگه از اول نماز های اینجوری. اینجوری. اینجوری. اینجوری اینجوری به سه حالت ورزش و صوبگاهی بکنه آره فعل کسیره اما یه بار این کارو کرده اون مکروهه چرا؟ چون انگار به همون کسالت روی نمیخورده خب فرع صادر علیه السلام و آه، این دیگه روایت شیعه است دیگه انهما من الشیطانه دیگه به هر دو تایی اخیر بزنید تساؤب و تمتی از شیطانه شیطان میاد نمیذاری نماز درست صحیح بخونی و الاباس اباس یعنی بازی کردن آره لغو عوض علاچی همینجوری چیکار کنه عوض کنه به شیعن منعضایه مثلا هی با این نرمه گوشش بازی کنه هی با ریشش بازی کنه سر نماز تا شروع شد ریش میکنه. ریشش مسللس اینجوری نکتیز میشه یا با انگشتش بازی میکنه یا با دستش یا با دماغش اینجوری بازی میکنن بعضی بعضی تا نمازشون میکنه همه جاش میخاره همه جاش بشای من نزاحت چرا این مکروه ها این دیگه اختیاری داره دیگه این دیگه اختیاریه بله این اختیاری حالا قبلا میگم گفتن اختیاری من به ذهنم ل منافات الخشوع الماموره به چون این با خشوع مامورن به منافات داره بابا یه نماز ارش کردم مثل بچه آدم بشین نماز بخون چی کاری وقد رنا بي صلى الله عليه واله نبی اسم شریفش شماست الله محمد محمد اگر اگر ما بدونیم همه چی همه چی این چندل که نشستید این در و دیوار این فضا این خونه این جهان کل هستی وجودشون همش مال این شخصه اون وقت آدم بیشتر دیگه حس میکنه که باید بیشتر احترام قائل شد اما چ این پیغمبر عزیز رو ما نشناختیم و نبایدم بشناسیم چون اون خیلی سطش از ما بالا. اگر بدانید که اگر بدانید که پیامبر و امام ها آموزگار فرشته ها بودن، یعنی اصلا فرشته ها رو اینا یاد دادن همه رو ملائکه فرشته ها این خلق شدن قبل و این ها. نه اصلا اینها قبل از همه چی خلق شدن و هر چی هست به خاطر اینهاست و خیلی اختیارات همه چی هم دست اینها حتی فرشته ها هم اینا یاد دادن چیکار کنند چطور خدا رو عبادت کنند و این ها حالا یه مقدار اومد حواسش بیشتر شد خیلی حالا خیلی خوب وقت رن نبی صلی الله علیه رجلن و الی رجلا یعبس فی الصلاه یه نفر تو نماز با خودش بازی می‌کنه بعضن با شالش با حالا این فقط شاید من اعضایی گفت پس وقت با لباسش با کلاهش با نمیدونم حالا ممکنه باشتنی باشه با گوشیش تا نمیدونم شیء من اعضایی و امواله هم ممکنه باشه باشتنی اینو بذار کنار جون هرچی دوست دارید <تصفح> یا بس ها گوش کنید ببخشید پس داشتی با اعضا بعد می‌رفتی چه چه را گوش بده یا بس فقال لو و قلبه هذا لخشعت جوارحه اگر این قلبش خاشع بود جوارهش هم خاشع بود معلوم که این اصلا جلوی خدا حالت خوشو نداره بعضی یه, یه تجربه یه استادی میگفت این رو یه استادی میگفت که قبل از نماز مغربش ده دقیقه برید خلوت یه جایی پیدا کنید اونجا بشینید حس کنید که در محضر حضرت اوجحت نشستید. انگار از اون نشستم شما رو دارم میبینم همین سکوت سلام هم جو بشید. هیچ کاری ندارم قبل از نماز مغربش 10 تا این تجربه خوبیه استاد نماز اون شاید ممکنه برای اوایل دیگه خیلی زیاد نباشه همین یه بار یه نماز مغربش شاید آره بعد ها ممکنه آدم دیگه تاثیر بذاره روشو بیشتر بشه حالا فعلا برای شروعش یه بار یه نماز کافیه مسائل اخلاقی دستور و میخواد مثل نسخ است همینجوری اسپری هر داروی رو بگیرید بخورید فایده نداره حالا این حرفش پیش اومد رو بگم مواظب باشید تو دستورات اخلاقی خودسرانه عمل نکنید بعضن بعضی از دستورات اخلاقی از هر کسی هم نگیرید از هر کسی نگیرید کسی امثال من اصول اخلاق نیستیم هیچ عنوان دیگه من خودم رو گفتم که پایین ترین بالاترها استادای ما هم خیلی‌هاشون استاد اخلاق نیستن اونایی که به اسم استاد هم میان برای شما یا میرید درس اونها خیلی‌هاشون استاد اخلاق نیستن آدم ها خوبی هن. اره استادها استاد این استاد فرق میکنه استاد بعد خودش یه جای رسیده و بلدم هست ببره بعضی هم هستن رسیدن به جایی ولی بلد نیست ببره از همین علمای علمای خیلی بزرگم بعضی‌هاشون رسیدن به جای. ولی بلد نیست. دستورالعمل میده میبینی خیلی فایده نداره. چون بلد نیست. خودش رسیده. لذا خیلی چیز نکنید. بوده مثلا طرف ذکر یون و سیه خونده دیم. اعمالی انجام داده. فلانه ها بردن طرف اگر مرتد نشه خدا بهش رحم کرده. مرتد نشه یا دیبونه نشه. بذ همین معامله معمولی و عبادت معمولی رو فعلا انجام بدید گناه نکنید ان شاء میشه خب و تنخم آقا اینا هم مکروحه تنخم یعنی خلت و وسط نماز یه دفعه طرف میاد همونجا این کارو بکنه خب باطل نمیشه ولی دیگه مکروحه خلت آره اخلاط سینه و اینا و اینها آره و خصوصا الی قبله. طرف نشونگیری میکنه رو به قبله مثلا طرف میکنه ولی یمین سمت راست و مثل اول بساق آب دهن آره و بین یده جلوش حالا اینو معلوم میشه که مثلا اون فرش و اینا نبوده مثلا این طرف یابون داره نماز بخونه اونجا هم اینا پیش میاد میگه منش روحه خب فرقه چی چی هست وسط نماز یا چنده بود انگشتش رو یه داره میشکن اینجوری رو آره به قولشون وسط شکستن یه آخش هم میگه یا چن و یا چنستنین بلعصابه انگشتان رو اینجوری میشکنه اینم مکروهه صدای انگشتان رو در آوردن فرقه و تاوه به حرف واحدن تاوه یعنی آه کشیدن وسط نماز هی آهی از ته دل البته اگر دو حرف شد مثل همین هی دو حرف شد اون باطله چرا؟ چون تو قبلن بحثای قبلی گفتیم اگر کلام مشتمل بر دو حرف داشته باشید نماز باطله پبینیم دو حرف آه آه دو حرف شد دیگه یه حرفی یه آه یه حرفی بکشید آه آه آه یه حرفی میکنم اینو بگم اشتباه میکنم آه دو حرفی همزه به زافیه همزه به زافیه الفه همزه به زاخره می شود آه حالا چجوری پس یه حرفی حالا هیه بود دیگه یه حرفی نه قیل اختیاری شد قیل اختیاری شد خیلی خوب آقا جان. پس آه کشیدن به یه حرف واحد پس حرف واحد رو گفت که باطل نشاه این منکروهه و اصل و این تعوه فعل تعوه از کجا درست شد اسل هو او اوه, اوه اسم فعل یعنی آه میکش آره اد شکایت و توجه اوه اسم فعل آره شاید اسم صوت باشه من الان شک کردم یه اسم صوت داریم یه اسم فعل بده فکر ما هم اسم فعل حالا باز بگید وقتی آدم ناراحت میشه اند شکایت شکایت از چیزی ناراحتی توجه ناله و شکوه و شکایت از چیزی رو میگن تعوه اول هم از کردم این اوه رو یه جور دیگه اش هم هستیه یه چون دیگه هم داریم شاید شایدستان اون رو میگفته اوه این رو هم داریم همینه منیش همینه ول مراد و هنا انتقو بهی الا وجه لا یزهرامنه حرفانه دو حرف ظاهر نشه ها ازش ولی لا باطل میشه تا تمام شد حالا مکشوره بعدی ول انینو بهی انین هم است اون قبلی آه بود انین است. زخمی، دردی، چیزی، مرزی داره، آخی، آه،, آه، این روی. حالا ایناش دو حرفی، سه حرفی بود، شما یه حرفی شد در نظر بگید، این میشه مکروح. انین یعنی ای بل حرف الواحد بهی یعنی به حرف واحد. و هو، مثل تاوه، این هم مثل یعنی آها متا و قد یو خستل انینو بل مریض، انین مال مریضه اون آهوناله مال کسی که ناراحته از روزگار مثلا البته اون تعوه میتونه اهم باشه مریض هم میتونیم بهش تعو کنیم اما انین فقط به مریض گفتن بعضیا قوی و خس و بعضیا بعد من امدیه سرین لا اینا امدیه امدی خصوصا ناله کنه باید باطن کنه. کنه چرا دو حرف نداره که تو حرف نداره چیزی مبتلات رو انجام نداده که این امدیش مکشوه وسط نماز ناراحتی یه دقیقه <باطل>, باطل نمی کاره. فقط مکشوه دیگه علت چراحتش یا روایته یا حالا او اون گفتم نمیدونم ولی خشوع نماز رو باش منافق کنه دیگه و مدافعت الاخبسینه آقا مکشوه بعدی خودداریم مدافع یعنی اینجوری حبس کردن نگه داشتن آره. نگه داشتن اخبسعین اخبسعین بول بالا قایته طرف تو فشار هست میگیم برو دستوی بیان نماز بخون میگی نه همونجوری میخون وقت تنگه نه وقت داره بابا وقت داره اما اول وقت برو دستوی راحت بیا نماز بخون میگی نه همونجوری میکنن این مکشوهه بله یه وقت از آخر وقت به دست ری مخصوصا این به دست ری که نماز مغرب شب شما قضا شه این نباید بریم بله. دیگر اون موقع مکروه نیست اما اگر وقت توسعه داره خب چرا نگران می‌داری با آرامش علت این هم باز میتونه همون خشوع و حضور در نماز باشه که این نهز قرض میشه اگه این رو اشکال ندید بله ها این رو آخرش می‌گادم اینو آخرش آره پیش مدازه نگردیم آخرش و مدافعتال اخبسه اینه بعدی بعدیست آخرین مجروحی که اینجا گفته میشه الباله والقاعته اول ریح باده مدم همینطور لما. خواب هم هست خواب رو هم میگه پایینش واچه ازا مدافعتم نامه خوابش میاد داره میمیده از بیخوابی خب مجروح اینجوری بخونیم برو چایی مالیتو تو یا یه د دقیقه بخواب یا چول بزن بعد بیا بخون دیگه وقت نماز چرا یه جوری تنظیم کردی وقت نماز وقت خوابت شده خوب نیست لما فيه من سبب الخشوع لما فيه من سبب الخشوع والاقبال بالقلب الذي هو روح العباده روح عبادت همین خشوع و ایناست دیگه و الان نماز رو برای ظاهری که نگفتن که نماز چون روحش همون خشوع و خضوع قلبیه همه اینها رو خراب بکنه پس مچروحه این رو باید بذاری حالا این نکته قبلا من خدمت تو گفتم خدا تو احکام بناش برای نبود که هرچی شد بگه حرام حرام حرام نه اینجور نیست خدا بناش بر حرمت خیلی چیزها با این که حرام باشه ولی بناش برای شده که خیلی چیز رو حرام نکنه با اینکه که میشد حرام شد. لذا اینها شاید حقشی بود که حرام باشه ولی حرام نشده پس دویگه مکروب بودنشون رعایت کنی نماز اینجوری خراب نشد خب و کذا مدافعتون نامه و این نما یکره و ازا وقع ازاله که قبلت تلباسه به ها ما سعط الوقته اولا قبل از تلباس این حالت ایجاد شده چون یه وقت نماز رو شروع میکنید. الله اکبر بعد یه دفعه بینید فشار اومد بگی اللهم اصلا یه دو دیگه زودتر می اومدیم من میرفتم راحت میشدم بین نماز شد اب نداره اون مکروه نیست سه سه وقتم اگر نباشه دوباره مکروه نیست چون وقت تنج دیگه من ور کنم برم دنبال این کارا نماز قضا میشه سه وقت یعنی وسعت وقت و الا حرام القطعو اگر اگر وقت پنج نیست و اگر بعد از نماز ایجاد شد اینها اون شما بگه خب مجرد دیگه نماز قطع میکنم میرم این نه حرامه حرام ان قطعو مگر چه بله الا ان يخافا میدونه نه اگر این نره در شویی رودهاش مد مد منفجر میشستن خب باشه دیگه ول کن نماز قرف کن برو اون میگه بحث دیگه ضرر خب قال المسنفا فعل بیان شهید اول در بیان این عبارت رو داره ولا یجبروهو فضیلت و اعتمامه این چراحت که گفتیم جبرانش نمی کند یجبروه این کراحت را هم مستره شاید از این مزکر را بود چراحت این مدافع را جبران نمی کند فضیلت و اعتمام میگه آقا الان وسعت وقت هست من هنوز لمحات رو شروع نکردم ولی خیلی دستویی عذیت هم میکنه اما برم دوباره تجدید و وضو کنم برگردم نماز جماعت تموم میشه میخوام اعتمام کنم این آیا اون کراحت رو از بین میبره؟ میگه نه کراحتش در جاشه هم کراحت داره. الان در مسجد بازه ولی برم وضو بگیرم برگردم این چیزی چیه مسجد خادم مسجد در رو میکنه مجموعه بیرون بخونه مسجد کجا بیرون کجا؟ لذن نمیرم تجدید وضو پس چراحتش نباید باشه میگه نه چراحتش باشه. پس ولا یجبره فزیلت الاعتماد امام جماعت او شرف البقعه شرف بقعه مثلا تو مسجد خواندن اون چراحت رو جبران نمیکنند تمام شد آخر نکته هم که آقای قاافل باشی گفت و فی نفی الشراحته به احتیاجه علت تیمم نظران آقا خودداری کردن مجروح هست میگه الان من خودداری نکنم برم تجدید وضوع اصلا آب نیستا مجبورم با تیمون بخونم اون وقت باز مجروحه چراحتش میمونه سر جر. میگه ها اینجا دیگه جایه تعمله از این ور شما با این فشار میخواید بخونی پس چراحت باید باشید از اون اگر خودداری نکنی بری تجزید وزو آب را از دست میدی تهارت ماییه رو از دست میدی می یه پله پایین تر میشه تهارت خاکیه میشه این یه مقدار جای چراحت داره لذا اینجا محل بحث میشه میری که وفی نفیل چراحت به احتیاجهی علت تیمون این به احتیاجهی بعد از قطع نماز نظرون اینجا جای نظر هست یعنی برای هر دو طرف وجهی هست که ما صحیح بدونیم که عرض کردم صلوات بفرستی اللهم الله الله الله صل علی محمد, الله محمد و آل محمد تکمس صلوات سجیلت الان یعنی یعنی این که من میخوام با جماعت بخونم خب این یه فضیلتی دیگه پس برد. اون با فشار خوندن که مکروه بود دیگه مکروه بودنش میپره میگه نه نمیپره مکروه بودنش سرو در ببند درست ثواب امام جماعت هم میبری ثواب جماعتو میبری ولی این چراحتشام ذکر آیه وقت که شماتون میگیید با اون قطعو برید نه نوازه قطع کنی نه تو سه وقتت توام بره سه وقت ببین شما تو سه وقت حق نداری نماز رو قطع کنیم از این وعده بگو از این وعده بگو بگو چرا حرتش مال جاییه که قبل از نماز اون فشار اومده و وقتم زیاده اینجا چرا نمازاستون کراد ندادم تو چی اصل نماز در اصل نماز رو که چیکار کنم در اصل نماز اومده دیگه امکانش چه قطع کنم تو زیقه وقتم چه خب چیکار کنم نمیتونم قطع کنم اونجا دیگه چراحت نداره این چیزو چی من اصلا متوجه نشم من از وقت قبل از سیعت وقت يوشد. خب دیگه چراحت مال این دو شرطه چراحت است که قبل از شروع نماز تو فشار بودم وقتم باز بود میتونستم برم وضوع بگیرم بیام در این صورت من چراحت تو نمازم هست اما اگر اینها نباش مثلا من بین نماز تازه فشار شروع شد یا نه از قبلش شروع شده بود ولی وقت تنگه من که نمیتونم نماز رو قطع کنم قضا میشه اونجا دیگه چراحت نداره آره. البته اینا به شرطی دینید که اون زرر نشاه اگر فشار باعث بشه که لطمه ای به شما بخوره مثلا کلیه از تضمیم بره اون دیگه تنجیه وقت و اینا هم باشه ایب نداره دیگه مجبوری دیگه باید قطعه حفظه نفسه نیگه